نادان را به از خاموشی نیست، وگر این مسلحت بدانستی، نادان نبودی، چون نداری کمال فضلان به که زبان در دهان نگه داری، آدمی را زبان فضیح کند، جوز بیمغز را سبکساری، خری را ابلهی تعلیم میداد. بروبر صرف کرده سعی داگم حکیمی گفت شی نادان چکوشی در این سودا به ترس از لوم لایم نجاموزد بهایم از تو گفتار تو خاموشی بیا از بهایم هر که تعمل نکند در جواب بیشتر آید سخنش ناسباب، یا سخن آرای چون مردم بهوش، یا بنشین چون حیوانان خموم.